سخنرانی دکتر محمد اشدی گرمارودی موضوع سخنرانی بحثی پیرامون مفهوم واقعی صبر و تجلی آن در تمام شئون زندگی بشر با توجه به فرموده امام حسین علیه السلام در صبح آشورا نوار شماره هفت قال علی الحسین علیه السلام صبرن ذن موت و قن تأبر بکم عن البؤس والذراء إلى الجنان الواسعة و دائمه الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى غسر وما هو لا إلا كمن ينتقل من غسر إلى سجن وأذى. إن أبي حدثني أن رسول الله ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والموت جسرها اولى الى جنانهم وجسرها اولى الى جهيمهم ما كذبت ولا كذبت من اجازه میخوام با اینکه فرصت زیق به این بحثا فعلا نمیتونیم بپردازیم فقط دو سوالی که امروز یکیش هم تلفنی از بنده شد هم اینجا به دستم رسید و یک دیگه ای که در رابطه با بحث صبحه ولی رفته به بحث شب هم دادن به دستم رسیده سریع سه چار دقیقهی ای جواب این دو سوالو رو عرض کنم بحثمون رو پی بگیریم سوال اول اشاره ای داشتم بنده که آیا از این توسلات و دنبال دین رفتنها و عشق ریختنها برای عبی عبدالله علیه السلام بعد نمونهای در مورد فردی عرض کردم که بعد از مدتی تماس گفت ذکری وردی به ما یاد بدید که ثروتمند بشیم و بعد از اون که این ذکر و ورد رو دریافت نکرد گذاشت و رفت در این نوشتن که آیا اگر ما برای ابو عبدالله گریه میکنیم یا تو اماکن زیارتی میریم برای مشکلات دنیاویمون هم دعا کنیم و درخواست کنیم این اشکال شرعی دارد؟ نه اشتباه نشه یک بحث بحث سطح بالاتر و پایین یک بحث اینه که دین رو فقط به خاطر سروتمند شدن بخواد اگر ذکر و وردی که برای ثروتمند شدن میخواد پیدا نشه پس دیگه دینم نمیخوام این بحث رننده است اما حالا در کنار کارهای دینی از معصومین درخواستهایی که دارد از خدا درخواستی که دارد حالا به اختضای سطحش گای این اشتبانش اما بحثی که یه مقدار بحثنگیده ولی من با اشاره باید رد بشم دیشب در اینجا عرض کردم صبر برای انسان مطرحه برای حیوان و فرشته مطرحه نیست خب درست یه بحثه ریشه ای است که به اندازه امکانم استدلال کردم سرشتگان در قرآن داریم که وقتی خدا خواست آدم را بیافریند بحثی که صبح مطرح کردیم، اون حجوب نوری که مقام برجستگان عالم وجود این است که اون هجاب رو هم کنار زدن و اون مرحله بالاتر رو بهش رسیدن که الله فردا همون رو پی خواهیم گرفت دو ملک حدیثی امروز صبح خوندم که دو ملک از ملائک الهی مطلبی در مورد خلقت انسان گفتند نورانیت اون عالم برای اونها مخفی شد ایشون پرسیدن اولا قرآن میگه همه ملاکه جمعه در اون روایت دو ملکه دوم دیشب بنده گفتم ملائک صبر براشون مطرح نیست به جهت که عقل من اینها با هم سازگاره منافات داره یا نه هیچ منافاتی نداره سازگاری شده قد بفرمایید مجمل عرض میکنم ولی از سال کننده خواهش میکنم چون فرصت زیغ من مفصل نمیتونم بحث کنم بعد بیارن با هم حرف بزنیم مجملش اینه آیا ملائک همه در یک سطح هم؟ نه روایات این رو بیان میکن. مگر جبرائیل و ازرائیل و اسرافیل و میکائیل سطح بالاتری ندارن همون روایتی که امروز راجب مقام سلمان خوندم مگه نبود که در دل ملائک مغرب یعنی ملائک مغرب سطح دیگری بالاتری نسبت به بقیه ملائک دارند همه ملائک براشون سؤال بود ولی ملکی که نسبت به بقیه بالاتر بودن که در منطقه هجوب نوری مأموریت داشتن اوناها وقتی که این سوال رو مثل بقیه مطرح میکنن میگن به اختضای سطح بالاتر بودن شما این نوع محرومیت مطرح میشه نه جریمه به عنوان این که گناه کرده چون در قرآن هم داریم سریع قرآنه که پرشتگان متی امر اما چون عقلن سؤال عقلی مطرح کردند هم در همون محدوده سؤال عقلی میخواد بهنا را برساند نسبت به حریم اون آن ارزنده ها توجه داشته باشید. این مجمل قضیه است بیشتر انشااءله توضیح خواهم داد که نه تنها منافات نداره بلکه یکی از اون روایات روشنگر این مطلب است. خب برگردیم به بحثی که در طول عرض کردم یکی از عوامل بسیار مؤثر که در تعالی معنوی و ایجاد مقام بالای انسانی لازم است و در قرآن و روایات تأکید شده مقام صبر است که انسان در شعون مختلف زندگی بکوشد این حالت را در خود ایجاد کند تا جزء بندگان رشد یافته مسیر الهی باشد مخصوصاً با توجه به عبارتی که چند شبه میخوانیم فقط قسمت اولش رو داریم بحث میکنیم اگر اصحاب کربلا هستم، کرام و بنل کرامن برای این عد صبر را امام حسین علیه السلام مطرح کند یعنی مقام بالاتر و رتبه عالی را می کسب کرد به وسیله صبر پس دو نکته در این ما از امام حسین روز آشورا می نسبت به این مطلب هرچه بالایی بالاتر میتونی بری دو اون موثرترین عاملی که تو رو بالا تر میبرد صبر است به همین جهت وقتی وارد منابع دینی میشویم صبر را گاهی در درجهی قرار میدن که ترک شکایت است یعنی طرف این مقدار قدرت تحمل نسبت به مشکلات در شعون مختلف دارد که زبان به شکوه باز نمی کند. یعنی در مرحله اظهار صبور است ولی ممکن است در مرحله دل راضی نباشد این صبر درجه بالا نیست از این درجه بالاتر صبری است زمینی که به زبان شکوه نمی‌کند در دل راضی است به آنچه که خدا می‌خواهد یعنی مقام رضا را هم دارد راضی به مقدرات الهی این که مقدر الهی گفته می شود چون بلایا مشکلات گرفتاری ها که برای انسان پیش می آید یا جزای عمل خود اوست اگر جزای عمل است زهر الفساد فلبر البر و بما به ما کسبت عید الناس خب پس اینجا وقتی که به مقام اعتقاد به خدا رسیده است و آخرت رو هم قبول دارد چون ارتباط با موتش رو هم میخوام انشالله یه مقدار شب وارد بشم وقتی اعتقاد به انتقال به عالم دیگر دارد خدا از باب لطف مقدر کرده پاره از اون لغزش هایش را اینجا تنبیه بشه اگر اینه لذا راضی میشه میگه خودم کردم جزاشم دارم میبینم اما اگر جزای عملش نباشد مثل واقعی کربلا برای عبدالله مثل ابتلایی که برای حضرت ایوب بود و حاکزا که این شبه بحثا کردیم. اونها برای ترفیه درجه برای مقام بالاتر به درجات ارزنده تر رسیدنه معرفت نسبت به این مطلب که پیدا کند ضمنی که با زبان شکایت نمی کند در دل هم راضی به این مطلب می شود. این هم یک صبره، ولی از این بالاتر با صبر داریم اون چیست نه این که شکایت نمی کند. نه این که در دل راضی می شود. بلکه دوست می دارد اون ابتلاعات را خدا برای او ایجاد کند تا در اثر اون ابتلا که از دوست به او رسیده است به قرب بیشتر دوست برسد این خیلی مهمه انایت بفرمایید حالا شاید آیاتی هم در این زمینه اشاره بکنم انایت بپرمایید هرچه از دوست رسد جمله نخوست این پله سوم از دوست رسیده برای مثل امام حسین ابتلا از ناهیه خداست برای انبیا و اولیا و بندگان صالح الهی ابتلاعات نعوذ بالله جزای زشتی های رفتاری نیست از طرف اله است. وقتی اله را دوست دارد هرچه از اله هم برسد دوست می دارد وقتی اله را کمال مطلق لطف مطلق رحمت مطلق می شناسد آثار اله را هم لطف و کمال و عنایت میشناسد به تعبیری زل جمیل جمیل است اگر خود جمیل است آثار و زل او هم جمیل خواهد بود پس اون که از او می رسد اگر چه در ظاهر به صور مختلف جلوه میکند، ولی در واقع همش لطف است آشقم بر لطف و قهرش من به جد ای عجب من عاشق و این هر دو زد یا من عاشق این هر دو زد در سوره هود قضیه حضرت نوه پیغمبر را وقتی خداوند مطرح می کند آیه سی و آیات قبل هم در خصوص اون همه هرس خوردن حضرت نوح و اون همه جوش زدن برای ارشاد مردم و صبری که نوح پیغمبر نهسد و پنجاه یا هزار سال برای هدایت مردم داره و تحمل میکنه به این پله بالا میخواد برسه این پله بالایی که خدا به نوح داده کدوم مقامه هت واصنعالفلک بهاعیننا و وحینا و و لا تخاطبنی الذین ظلموا انهم مقترقون تقاضا دارم آیه رو دقت کنی یه آیه دیگم در سوره مؤمنون در همین راستا راجع حضرت نوه توجه به این دوایه از این نظر عجیبه وسن به بعین لا کشتی رو به این نظر امام این که ما برات مشخص کردیم و وحی نا اونگونه که ما به تو وحی کردیم و دستور دادیم حالا به مرحله رسیده که باید کشتی رو بسازی اما ولا تخاطبنی الذین زلمو ان هم راجب اونایی که ظلم کردن و بناس غرق بشن جزء غرق شدنه حتی از من درخواست نکن که اینا رو نجات بده ولا تو خاطب به آیه دقت کنی یکی از بزرگان علم تفسیر که شاید در تاریخ تفسیر مثل او انگشت شمار پیدا شده باشه در دنیای شیعه او با توجه به الهام و انایتی که به او شده بود این اشاره رو میکرد می گفت هم که در آیات داریم نشون میده اینجا در رابطه باب پسر نوهه امتحانی که ابراهیم راجب پسرش میشه شه چیه؟ کاردو بذار رو گلوش خم به عبرونه می آه. یک ذره لذا ابراهیم سبوریش بردباریش از اون دید نشون داده شد امتحان نو به اینجا میرسه میبینه قبلا اتمام و حجت رو کرده به پسر گفته آیات قرآن میگه که اگه نیای سراغ ما غرق میشی پسر به عنوان مسخره میگه میرم نکه قله که آب به من نرسه میگه اگر غهر خدا شامل بشه نکه قله و پایین فرقی نداره اتمام و حجت شد تمام گشت حالا به مرحله ای که باید واقعیت تحقق بیابه خدا میخواد به جناب نوح بفهمونه در چه سطحی از صبر قرار داری که حتی میتونی این درخواست را هم از من دیگه نکنی برای اونهایی که طبق سنت من بناس جزء غرق شدگان باشند در سوره مؤمنون آیه بیشت فاوهینا فا الیه انسنعالفلک به اعیننا و وحینا قسمت اول شبیه همون ما اینجوری وحی کردیم به او که جناب نوح باشد که کشتی رو زیر نظر ما و با وحی ما ایجاد کند فاذا جاء امرنا و فارت النور وقتی امر ما رسید آب از اون تنور زد بالا که همه جا را بگیر از فسلوک فیامن کله زوجین سنین و از هر کدوم یک جفت توی این کشتی ببر و اهلک و از خاندان خودتم ببر تو این کشتی الا من سبق علیه القول منهم مگر اون موردی که قبلا راجبش بهت گفتم ولا تخاطبنی فلذین ظلموا انهم مغرقون انی که قبلا گفتم صحبتش گذشت حتی انقدر صبور باش که به زبان نیاف این صبر را میگن بالاترین پله صبری که اگر یک انسان در مسیر رضای خدا بخواهد حرکت کند انایت بفرمید در مسیر رضای خدا بخواهد حرکت کند صبر رو چند شبه داریم بحث میکنیم حبس نفس کنترل خیشتن در اون که او میخواهد من چی میخوام یا وقت خواستم با خواسته او بفت میکنه الحمدلله چیزی میخوام او نمیخواد صبر در اینجا معنا پیدا میکنه اون چرا که او میپسنده در مسیر پسنده او این تمرین را بکنم و رشد را در خود ایجاد کنم که جز خواسته او برای من مطرح نباشه لذا اومدن اهلفن مسئله رو شکافتن گفتن صبر قبل از عمل صبر ضمن عمل صبر بعد از عمل ببینید چقدر اینا دقیقه و روش کار کردن مثلا آیه یازده سوره هوده لا الذین صبروا وعملوا صالحات مفسرینی که به این ریزهکاریها دقت میکنند میگن الا الذین صبروا وعملوا الصالحات الا الذین منوا و عملوا صالحات عملو داریم ایمان مگر نباید باشد تا عمل صالح ایجاد بشه پس اینجام صبری باشد که عمل صالح ایجاد شود این صبر غیر از قبل از عمل صالح قبل از اینکه وارد عمل بشویم یه نوع صبر میخوایم این صبر چه نوع صبره؟ میگن صبر در تصحیح نیت صبر در تقویت و اصلاح اندیشه و نیت یعنی حبس نفس در مرحله نظر قبل از عمل این مقدار میتونه دقیق باشه یعنی چی یه لحظه دقت بفرمید بنده قبل از اون که بیام اینجا در خدمت شما مشغول این بحث بشم یک صبر در عمل میخواد خستم، صدام گرفته ناراحتم الان شرایط جسمی اجازه نمیده پس استقامت ندارم خسته میشم توان ندارم عمل نمیکنم این در ضمن عمل صبر ندارم اگه بتوانم این ایستادگی رو نسبت به این مقدار ضعف جسمی و ناتوانی بدنی در خود ایجاد کنم که بتونم عرض ادب کنم میشه صبر ذهن عمل نسبت به این مطلب ولی قبل از اینکه شروع کنم بیام اینجا عمل در ذهنم اون وسوسه های نفسانی که میگذرد یک زمان تو ذهنم میاد به عنوان ریا برم حسینیه به عنوان تظاهر برم حسینیه به عنوان خودنمایی برم حسینیه با عنوان چه و چه و چه اینا در ذهن میاد به اقتضای اونی که در ذهن اومده من حرکت میکنم ذهن گاهی نیت و اندیشه صحیح گاهی غلطه. صبر در مرحله نیت لازمه یا نه از اونجا با شروع کنیم یعنی به معضی که تو زن آمد من برای جنبه ای که خدا نمی برم عمل کنم قبل از اینکه به عمل برسد صبرش رو ایجاد کن یعنی جلوش بگیر بیست اجتادگی در مرحله نیگر اینجا دو جور میشه یک انقدر با نیتم کار کنم که درست بشه دو اگر دیدم نیتم درست نشده از عمل اجتناب کنم تا نیت درست بشه بعد به عمل بکشم شنیدید مرحوم آجمزدنی آقای شیرازی خیلی مرد بزرگی بوده خیلی بزرگ بر آیت الله برو جردی سالی ده شب از ایشون دعوت میکرد شیرازی الاصل ساکن استفان سال ده شب از ایشون دعوت میکرد بیان قوم فقط برای طلاب و روحانیون و فضلا و اساتید و حوزه درس اخلاق بگه غیر از طلب وحدت علمم حق نداشت پای جلسه‌اش بشینه 4 سال 50 سال قبل یه سال دو شب سه شب آج آقا منبر شب چهارم دیگه پیداش نشد سراغش گرفتم رفت رب اسفحان رفتن اصفهانای بروجدی منتظر شما برای کی مجلسو ترک کردید به گریه افتادند و فرمودند چون درس اخلاقه میگم وگرنه بیان نمیکردم شب سوم که بالای منبر بودم یه نگاهی کردم آقای بروجردی رئیس حوزه علما بزرگان فضلا اساتید همه گوش میکنن عشق میریزن حال خوبی دارن در ذهنم گذشت به ذهنم خطور کرد ما به جایی رسیدیم ما ببینید این همه مستمعین رئیس اوزه و غیره سراپا گوشند وقتی از منبر اومدم پایین با خود خلوت کردم گفتم منبر رفتنی که خود مرابی چاره کنه این بقیه رو که ارشاد نمیکنه با خودم دارم بیچاره میشم پس اینجا باید منبر رو رها کنم به زمانی که برای من چهار نفر حالا تعداد من نمیدونم این تو ذهنم رقم چیشون شون فرمودن نسبت ندم من به خودم تز... تمثیل میزنم مثال میزنم چهار نفر باشن هزار نفر باشن اگه برای من فرق نکرد اون موقع من بردارم این صبر در مرحله نیت قبل عمله یعنی قبل از اینکه به این عمل کشیده بشم مقدمه عمل رو درست کنم ریشه عمل رو درست کنم مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در محجت البيزا هم در باب توبه این بحثی که عرض می‌کنم مطرح میکنه. هم در باب صبر این مطرح میکنه به مناطبت ها در چند جا میاره میگه عمل رو اگر دیدید قبل از عمل دو مرحله را هم ببینید علم حال فعل فعل مرحله سومه. حال قبل از فعل علم قبل از حال. بعد این مثال بنده برای فهم مطلب ملا محسن برای خودم اینجوری تمثیر کردم گفتم مثلا پرد بفرمایید بنده طبقه پنجم یک ساختمان پشت پنجره که دارم بیرون پنجره تو خیاده رو نگاه میکنم برای من حاصل نشده ولی وقتی نگاه کردم متوجه یک محبوبی یک انسان خوبی یک فرد ارزندهی که من خیلی دوستش میدارم و براش ارزش قائلم افتاده سر شکسته خون داره از سرش میره با این توجهی که کردم چی حاصل شد؟ علم؟ این علم چه حالی در من ایجاد میکنه؟ به اقتضای کیفیت علم و رابطه من با معلوم حال دلسوزی، تأثر و قمخاری نسبت به اون فردی که تو پیاده رو افتاده در من ایجاد میشه حالا که این حال ایجاد شد قبل از علم که این حال ایجاد بشه خسته بودم نمیتونستم یه طبقه از پنجم به چهارم بیام ولی حالا حالی که در من ایجاد شد مرا چنان منقلب کرده که این پنج طبقه را به سرعت می دوم میام پایین کسی که دویدن مرا به سرعت از این طبقات می‌بیند این فعل می می‌بینه ولی این فعل زایده یک حالیه اون حال زائیده یک علمی حرکات ما اعمال ما صبورانه است یا نیست باید حال صبر ایجاد شود قبل از فعل صبر حال صبر علم نسبت به صبر میخواد علم صبر یکی از مهمترین عامل که باعث میشود شود علم درست شود که حال صبر ایجاد کند توجوی به آخرت است جانم فدایت حسین جان که می فرمایی سبرن بن و من الموت بلا فاصله موت رو مدرد کنیم حالا همینجا اجازه بدید من یه لحظه برم سراغ موت برگردم تو دوباره سراغ بحث صبر. به عنوان شاهد که چرا من این حرفو زدم چرا ما میگیم صبر صبر صبر. یک شاهد از حدیث از امام باغه رو صادق میارم یک شاهد از نحجل البلاغه میارم در تبیین امین فرمایش امام حسین علیه السلام و این ادعایی کلان الان بد بکردم دقت بفرمایید صبر گفتیم حبسه نفسه قدرت کنترل خیشتن در جایی که نمیپسندیم اکرا داریم این اکرا و ناپسندی ما را شکست نده قوی باشید در جایی که میپسندیم، نباید بپسندیم، این پسند غلط ما رو شکست نده. اینه یعنی طبق بحث دیشب، قوه شعوریه، قوه غذویه به بیان دیگر، بوده حیوانی وجود ما، جنبه شیطانی وجود ما، گرایش حیوانی و شیطانی داره، جنبه رحمانی داریم. جنبه روحانی داریم اون بعد روحانی بعد شیطانی را به گونه ای نگه دارد که حرکت من بر اساس گرایش بعد شیطانی نباشد اگر بعد شیطانی میخواهد منو به حرکت واداره حرکت فعله حال میشه حال شیطانی حال حیوانی حال حیوانی از علم حیوانی حالا علم حیوانی یعنی که حیوان گرسنگی را میفهمد یا نمیفهمه که علم حیوانی علفی بیام که اون گوشه گذاشتن از در آغل رفته بیرون اونور بر علفه این بر کتابه حیوان علم حیوانی دارد که اون علف این کتابه و علف منو سیر میکنه نه کتاب لذا حال حرکت به سوی علف در او پیدا می شود به اون سمت می ره ما صبر معناش چیه؟ وقتی علم حیوانی پیدا کردیم یعنی اون فهمهای غریزه شهبانی میفهمم دوست دارم غذا رو بخورم میفهمم دوست دارم این آب رو بنوشم میفهمم دوست دارم این پول یواشکی بلند کنم میفهمم الان نگاه به نامحرم بکنم لذت میبرم اینو میفهمم این فهم حال دزدی کردن خوردن نگاه به نامحرم کردن رو در من ایجاد میکنه این حال منو وادار به این فعل میکنه صبر این است که جلو این لذت رو بگیریم جلو این گونه از گرایشی که حال لذتی از فهم حیوانیش بگیریم مرگ توجه به او عالیترین عاملی که این لذت ها رو در ما میرانه یه مثال بزنم تا روایت روشن بشه شهوت ران ترین شهوتران بازیگوش ترین بازیگوش اون لحظه‌ای که می‌بینی که داره جان میده اون لحظه ای که میبینه یکی رو دارن غسل میدن اون لحظه ای میبینه یکی رو دارن تو قبر میگذارن مخصوصا اگر تو همین جلسه هست عزیزی که دوستشم میدارم خودش برای من نقل کرد روزی که من روما جایی شجاعی رو بردن غسل بدن ایشون گفت من رفتم اونجایی که ایشون رو گسل میدادن استادم گفت خودش به من گفت من یه مشکلاتی تا اون لحظه داشتم از اون لحظه ای که غسل دادن ایشون و آماده کردن برای کفن و دفن ایشونو دیدم یه تکانی در من ایجاد شد و این تکان منو وادار کرده که از اون روز به بعد تا تمایل به اون گونه ها پیدا میکنم فوری قبر و قیامت و مرگ و اینا جلوه کش میاد البته دقت بفرمایید همون گونه که علم حیوانی هست علم روحانی و رحمانی هم باید باشه اگه دنبال علم رحمانی نرفتیم فقط علم حیوانیه علم حیوانی حال حیوانیه در چه کسانی حال روانی، بر حال حیوانی قلبه می کند که دنبال علم رحمانی برن. حال روایتو یک کمی در قصد در کتاب بهار جلد شش صفحه صد و, و حدیث عجیبیش در این رابطه البته حدیث یه مقدار طولانیه از مصباح و شریعه است حیفم من میاد که یه قسمت هایی شو خونم همش جالبه حالا شروع کنیم ببینیم وقت چقدر اجازه میده قال از صادق و علیه السلام صفحه 133 جلد 6 نقل از مصباح و شریعه امام صادق علیه السلام ذکر الموته یومیت و شهوات نفس یاد مرگ شهوات را در نفس می می راند. خب شهوات نفسانی علم شهوانی ایجاد می کند علم شهوانی حال شهوانی ایجاد میکنه. حال شهوانی فعل شهوانی می در مقابله این علم شهوانی و حال شهوانی بیستم دیگه یکی از عواملی که منو وادار میکنه بیستم چیه؟ امام صادق می یاد مرگه البته انشاءالله بحث میکنم حالا شب و پس شب اگر خدا عمری بده توفیق بده بتونیم جنبندی کنیم که علمی که نسبت به مرگ باید پیدا کنیم یک فقط علم اون اندازه است که طرف تو کافی همه خوندید پیغمبر پرمودن میخواد یه اهل یقین رو به شما نشون بدم. بله یا رسول الله الان از در مسجد میاد تو. دیدن جوانی اومد قیافی مقداری زرد و نحیف حال حال عجیب سلامی بر پیغمبر کرد از پیغمبر اجازه گرفت یا رسول الله اجازه میدید من نماز بخونم پیغمبر فرمود مشغول نماز شد نه بعد نماز به یاران گفت بریم جلوش اومد فرمود در چه حالی چه همه گفت یا رسول الله در حالیم که گویا بهشتی رو در بهشت متنعه بینم و به قول معروف پیش قاضی من که نمیشه پیش پیغمبر که نمیشه دروغ بگه پیغمبر تعییدش کرده این اهل یقینه پس معلوم هرچی داره میگه من در حالیم که گویا بهشتیان رو در بهشت متنعه میبینم دوزخیان رو در دوزخ معذب میبینم و این دیدن من رو به این حال درآورده که رنگ چهرم اینچنان شده خطبه حمام در نهج البلاغه که همهتون یاد تونه دیگه ما که خوشبختانه دوستانی داریم اینجا خطبه رو حفظ کردن خطبه فطرو حفظ کردن کردند شاء خطبه حمام رو هم اگه حفظ نیستید حفظ کنید امیرالمؤمنین در خطبه حمام یکی از اوصافی که برای متقین میشمره همین هست یا نه میگه اینا گرچه در این به بهشتیا رو در بهشت متنعم دارن میبینن رو در دوزخ معذب دارن میبینن لولا اگر نبود اجلی را که خدا برای اونها مقدر کرده آنی در اینجا بند نمی شدن میخواستن برن این درجه ای از معرفت نسبت به مرگ که حالا داشته باشید تا بعد بگم علم شهبانی حال شهبانی فعل شهبانی علم روحانی یکی از این علوم روحانیه بعد حرزنده وجود انسان میشه علم نسبت به مرگ ذکر الموت یمیت و شعبات فن و یقل و منابت القفله غفلت قفلت رو که میخواد در ما جوانه بزنه قلب غم میکنه و یغفل قلب به موائد الله یا به مواعد الله تقویت میکند دل را نسبت به وعده های الهی و یورت تبعه تب طب را رقیق میکنه رقیقت تب ایجاد میکنه و یکس را الهوا، الحوا اون علم های برجسته هوا را در وجود ما میشکند و دور میریزد و یطفع نار الحرس و یحق را دنیا آتش هرس در ما خاموش میکنه دنیا رو در نظر ما کوچک میکنه و هو معنا ما قالا نبی فکر ساعت خیرون من عبادت سنه فکر گفته که علم ایجاد کنه میگه این معنای سخن است که یه لحظه فکر کردن از عبادت مستعبیه سال در بعضی روایات هفته سال بیشتره یعنی بشینیم فکر کنیم راستی مرگ تموم شدنه یا مرگ ورود به یه مرحله دیگه است حالا انشالله آیات و روایات و شبایی دیگه میخونم در این رابطه مرگ واقعا تمام شدن یا ورود به مرحله دیگه است وقتی این مرحله برای انسان مطرح شد و ذالکه اندما یعل الا اطناب خیام دنیا و یه شد دافل آخره اینجور فکر اگر پیدا شد تنابه های خیمه دنیا رو پاره میکنه و تنابهای خیمه آخرت رو محکم میبنده یعنی متوجه میشه که این مرحله گذرا ارزشی نداره غالن نبی کرو حادم لذات یاد کنید از بین برنده لذت ها را فقیله و ما و یا رسول الله فقال الموت حالا دست بکنید روایت طولانی تره نمیرسم مجمل و به اندازه بحث بکنم برزو کنم اتکرو حادم لذات اونی که لذتهایی شما را از بین میبره یادش کنید فقیل یا رسول الله و ما هو یا رسول الله گفته شده رسول خدا چیه فقال الموت خب موت لذتها را از بین میبره لذ... کدوم لذت رو لذت حیوانی شهوانی یا لذت رحمانی روانی اگر مرگ لذتها را از بین می برد به معنی لذت معنوی روحانی باشد چرا امیرالمؤمنین می‌فرماید به خدا قسم پسر عبی طالب به مرگ از بچه به پستان مادر بیشتر علاقه دارد ما دو تا لذت داریم دیشب هم توضیح دادم لذت حیوانی لذت روحانی آیا اصحاب عبی عبدالله لذت می‌بردان که دارن جان میدن یا لذت نمی بردن دو بحثا صبر در مرحله آلیش صبرن بن الکرام اون مرحله عالی که از رضا بالاتر رفته به پله سوم رسیده دقت بفرمایید شمشیر به جانش فرود میاد شیر به بدنش می نشینه خون از بدنش میره افتاده، تشنه، خسته، داره جن میده وقتی عبی عبدالله بالا سرش میاد نمیگه آخ حسین جان ببین چقدر راه تو زخم و فشار و تعمل کردم فقط میگه حسین جان قمم برای اینه که تو تنها موندی میشد دوباره زنده بشم بازم از تو دفاع کنم این لذت برده از اینکه که جانشو داده میگه میشه یه بار دیگه زنده بشم دوباره از تو دفاع کنم مادره به پسرش میگه ام و چرا نشستی پسر پیغمبر تنهاست میاد میره سرشو میبرن مادر جلوی خیمه داره نگاه میکنه سر و پرتاب کردن به طرف خیام عبدالله سر رو که وردش مادر پرند به طرف دشمن گفت سری رو که در راه خدا داده ای ما پس نمیگیریم این حالت در وجود که ایجاد می شود توجه بفرمایید ارزش و لذت بالا سری را میفهمد فهم نسبت به اون فهم حال پیدا می کند و نسبت به اون حال فعل پیدا می کند و لزامی که عضو کرو توجه کنید یاد بیارید این فهمو در خودتون ایجاد کنید حادم لذات را یعنی لذت‌های شکم و شهوت و خونه زیبا و اتومبیل بالا و چنین و چنان و مرک رسید همه اینا میره خب اینا از بین میره وقتی توجه به اینها انسان پیدا کرد حال شهوانیش کم میشه حال شهوانی که کم شد از اون طرف توجه معنوی ایجاد میشه پس برای صبر قبل از عمل صبر قبل از عمل چیه؟ این حالا کوتاه گفتم هنوز کار دارم این حدیث طولانی تره احادیث دیگری هم در این زمینه هست از خطبه دویست و سی مولا خطبه دویست و سی قسمتش فَإِنَّ فا الْمَوْتَ حَادِمُ لَذَّاتِكُمْ و درو کم، مولا در کنار این لذات شهوت و مطرح کرد یعنی لذتهایی که مربوط به بعد شهوانی و حیوانی انسان میشه فان فا الموت به درستی که مرگ از بین لذت لذتها و کدر کننده و معف کننده شهوات است جثار 349 نهج البلاغه از کلمات اثر قسمت آخر نهج البلاغه 349 من اکثر من ذکر الموت کسی که زیاد بیاد مرگ بیفته راضیه من دنیا به لیثیر نسبت به دنیا به اندکش قانع میشه این اندک در دنیا معانی گسترده ای داری که توجه دارید فرصت تحلیلش رو پیدا نمی کنم خب پس یک سبر قبل از عمل قبل از عمل چیه؟ تا در مرحله اندیشه شهوت دخالت داره حالا شهوت فقط شکم نیست واید شهوت مقام واید شهوت ریاست واید شهوت منیت های گوناگون آقا افرادی که اومدن کربلا بعضی پارسال از روی منابع براتون خوندم امسال سبک برستم فرق میکنه دیگه با اونجور منابه مراجعه نکردیم کاری نداریم یکی از پیرمردای ریشسفید ریش سفید آبد زاهد جانماز بکش نماز شبخان کوفرس ابن زیاد دید او رو بخواد بفرسته کربلا خیلی از مقدس ما میگن خب او رفته ما بریم دیگه ببینید او رفته ما بریم یعنی علم در اینجا در حدیست که فقط میخواد از افراد چیزی بیاموزه حقیقت و نشناسه لذاد زیاد اومد آقا من آقا اختیار انقدر زیر گوشش خون آخری میدونید با چه وعده فرستاد کربلا خب بزرگترین مسجد رو در کوفه برای تو میسازم وقتی امام حسین رو کشتید برگشتید کوفه من پیش نماز بزرگترین مسجد کوفه قرارت میدم تا تو اولین امام جماعت کوفه حساب بشی برای اینکه بزرگترین مسجد کوفه رو امام جماعت بشه را میفته میاد امام حسین میکشه تو این گروه قرار میگیره یعنی این فعل از چه انگیزه برمیخیزه انگیزه ای که من از بقیه امام جماعت ها جلوتر باشم پس صد بره در مرحله نیت و اندیشه ندارد حالا اگر گفتن از من منل ایمان به منزلت رأس منل بدن برای ایمان مثل سر برای بدنه و ریشه رو شروع کنید بیاد بالا الا الذین سبر و عمل و این صبر قبل از عمله صبر بعد از عمل ببخشید صبر زمن عمل حالا نیت سالم میخواییم شروع کنیم کار رو یه دفعه و کار شیطان وارد میشه ویلمون که نمیکنه و عوامل گوناگون شیطانی وارد میشه تا ما رو در راستای این عمل منحرف کند اینجا هم نیاز داریم اون علم را همچنان دامن بزنیم تا بتوانیم از نظر ادامه فعل دوچار مشکل نشیم سوره بود. در سوره انکبود راجب صبر در ضمن عمل 58 و 59 هر کدوم می میخونم در آیه 58 میفرماید که اواخر آیه 58 نعمه اجر العاملین چه خوب اجری برای عمل کنندگان است کدوم عاملین آیه بعدی توضیح میده نعمه صبروا <اللزین> و <علا> ربهم یتوكلون یعنی عامل از مرحله صبر قبل از عمل گذشته دیگه رو درست کرده وارد عمل داره میشه حالا که وارد عمل داره میشه در مرحله عمل در ادامه عمل صبرو داره صبر میکنه این نعمه اجر العاملین برای این جور عامل‌ها اجر خوبی است یعنی در ضمن عملم صبرش رو داشته باشن ممکنه یه بنده خدایی حقیقتاً با یه نیت خیلی خوبی کلی فکر کرده فکر کرده یاد گرفته تو نیتش ایجاد کرده من این سفر حج را فقط برای رضای خدا قرب الهی را بیفتم برم حالا که رسیدم یه عبادات اینچنانی به جا بیارم اما وقتی حرکت میکنه یواش یواش بس, بس ها و زمزمه ها شروع میشه در ضمن تواف حتی به این صورت گای اوج ما الحمدلله چه توافی میکنیم من فکر نمیکنم تو حاجی های امسال کسی پیدا بشه مثل من اینجوری جالب تواف کرده باشه من امسال چه حالی در زیارت قبرستان بقید در بین این همه زائر کسی بود که مثل من این تو ذمن عمل خود شو بت کرد همین جا مبارزه میخواد صبر ذمن عمل صبر بعد از عمل داری بعد از عمل بعضی وقتا کارو میکنیم بعد از عمل خرابش میکنیم لا توتلو صدقات قمبلمن بل, بل از صدقه رو داده لا تبتلو باطلش نکن یعنی چونستی بیستی دل بکنی از مال بدی ولی بعد از اینکه دادی منت میگذاری عذیت میش... عذیتش میکنی پس باطل شد لا تبتلو اعمالکم قرآنه اعمالتون رو باطل نکنی یعنی بعد از عمل باز دوباره نفس به گونه ای شروع میکنه فریب دادن اون بعد شهوانی که این رو بخواد از میان ببره این مقدار جنبندگی کنم امشب فرصت اجازه نمیده روایات و آیات دیگه میمونه برای فردا بریم نمونه بارزش وجود مقدس ابوالفضل علیه السلام رو که دیگه زبانم بند میاد دیگه تحمل حقیقتا گفتنشو ندارم ولی میخوام از زبان معصومین علیه السلام بگم که ابوالفضل علیه السلام یک نمونه کمال محیاره در کام مراحل زندگیش و لذا به جایی میرسد که وقتی امام حسین میاد کنار بدنش من که نمیفهمم. شما رو به خدا اگه میفهمید به من کمک کنید عبارت مدرکش رو براتون می خونم. وقتی امام حسین علیه السلام میاد کنار بدن ابل فضل العباس علیه السلام میگه به عدی انت و نفسی من و بابام فداد بشیم من نمیفهمم فضل معموم امام حسین امامشه امیرالمؤمنین پدرشه و امامشه و خود ابالفضل علیه السلام در عمر ادب رو رعایت کرده به امام حسین برادر نمیگه یا سیدی و مولای اما حالا وقتی اومده کنار بدنش به ابی انت و نفسی یه حسابی داره که منم چیز نمیگم لذا به عبی انت و نفسی اینو مطرح میکنه آقا شما رو به خدا دنبالش برید مرحوم شیخ صدوق در خصال اینو نقل میکنه یعنی چی یعنی چی امام حسین صدای چه میشه فدای حق یعنی اون حقی که در عالم باید تجلی کند در بین شهده های کربلا مثل توی اول علیه السلام من چندتا و کجا میتونم ببینم لذا اینجوری بیان میکنم. حالا جمبندی بحث و دقت بفرمایید به اندازه بحث امشب ما اگر بخوایم به جایی برسیم باید محرک صحیح ایجاد کنیم نسبت به محرک های غلط بازدارنده قوی ایجاد کنیم تا دو تا با هم دیگه نباشه مثل اتومبیل موتور به راهش بندازه ترمز نگهش داره ما احتیاج داریم هی hey, در درونمون از بیرون کمک بگیریم برای این منظور که در ما فهم برای حال روحانی هی ایجاد بشه حالا شما رو به جان ابل فضل علیه و السلام سوال میکنم علم روحانی که حال روحانی ایجاد کنه های معباره ایجاد میشه تو مجالس گناه ایجاد میشه با دوستان ناباب و همنشینان ناجور ایجاد میشه حتی در مجالس خوبانی که چار نفر دور هم میشینن جکها و شوخی های بیمزه سبو تحریک کننده شهوانی مطرح میشه اینا علم و حال روحانی ایجاد میکنن یا تو مجلسی که بیاده امام حسین میفتن تو مجلسی که قرآن میخونن تو مجلسی که دعا میخونن تو نصف شبی که پا میشن یا الله میگن شب ای که الهی و ربی منلی غیرک میگن با چهار تا انسانهای ارزنده معنوی میشینن میبینن وقتی اسم خدا و پیغمبر برده میشه عشق ماشون میاد حالشون منغلب میشه اون چه علمی رو ایجاد میکنه اون علم چه حالی رو اون حال چه فعلی رو ما در مقام حرکت به سوی والا باید این معرک رو در خودمون ایجاد کنیم این معرک زمانی معرک از سفر قبل از عمل سفر ضمن عمل صبر بعد از عمل داشته باشیم به معنای صبری که در اون مرحلهم مرحلم براتون اشاره کردم شکایت نباشد نه بالاتر راضی قلبی باشه نه بالاتر دوست می دارد اون چرا که محبوب دوست می دارد و وقت در این راستا ببینید در جمیع شؤون اول فض علیه و سلام چگونه صبوریه من که زبانم قاصره فقط به ای که حالا شرایط اجاز می دید اجمالی عرض کنم و بگذارم اول فر علیه الصلاه و السلام از زبان امام صادق علیه الصلاه و السلام کان ام البواس نافذ البصیره سلبول ال ایمان جاهد مع اخیه الحسین و ابلا بلا ان حسنا و مذا شهیده از دید امام صادق. اموی من عباس نافز بود یعنی بسارتش عمق نگرشش توجهش به مسائل به ای بود که به اعماق ارزش ها کرد چگونه پیبرد به ارزش ها یه چیز کچولوش قضیه تاسو که جلوه کرده چون رو شده وگرنه همیشهش اینجوری بوده چرا علم میشه آشورا همه شهید شدن تاسوعا فقط به عنوان یه نمونه از نافذ البصیره بودن ابالفجر اله السلام وقتی که روز دوم وارد کربلا شدن هر اطراف امام حسین رو محاصره داره عمر سعد بعد وارد شد با یه عده زیادی اضافه شدن روز هفتم آب رو بستن بیشتر اینها رو در محاصره گرفتن اتش بالا رفت مشکلات برای اینها شدید شد ولی هنوز عمر سعد و هر هیچ کدوم جرأت درگیری با امام حسین رو ندارن هی دارن با نرمش جلو میرن ببینن چه میشه شمر بغلص ابن زیاد نشسته بود نامه رسید برای ابن زیاد از طرف عمر سرد که نمیشه یه جوری با مساله مساله رو فیصله بدیم شو. شمر پا شد گفت ابن زیاد مهلت نده به حسین تا اینجا در محاصره از کارشونه یکسره کنید وگرنه مشکل میشه خودش آدم خشن جزء خوارج یا خاصی داره. حکم گرفت از ابن زیاد میرم کربلا اگر عمر سعد امیری رو پذیرفت به این شرط که فوری حمله رو شروع کنه که به فردها نشد امارت مال من این نامر رو گرفت عصر تاسوها وارد کربلا شد امام حسین علیه السلام یه مختصر استراحتی کرده بودن یه درف زینب سلام الله علیها دید قلقله‌ای شد شمر با یک دسته جدید رسیده بود از راه رسید دوید به طرف خیام ابی عبدالله صدای شیعه اسقا و ثم ها و گرف و قوار بلند شدن و صحنه عجیب امام حسین حضرت زینب سلام الله علیها دوید عمر تو خیمه امام حسین داداشم برادرم امام حسین علیه السلام فرمودن که خواهر الان داشتم خواب میدیدم. همینجوری سرشونو به قبله شمشیر تکیه داده بودند چورتشون برده بود خواب می دیدم جددم بابام علی مادرم زهرا برادرم حسن حلقه کرده بودند داشتن آماده می بهشت رو می منتظریم که حسین به زودی بیاد زینب سلام الله ها گریه رو آغاز کردند دو عرض کردند الان حمله داره آغاز میشه شه امام حسین فرمود عباس رو صدا کنید اولی در میان همه این هفتاد و دوتن برای امام حسین اولفظ علیه السلام حساب خاصی داره عباس صدا کنید عباس صدا زدن اومد داداش برو ببین اینا چی میگن مادر جناب اولفظ علیه السلام امول بنینه از قبیله بنی کلابه شمرم از این قبیله است. لذا یک نسبتی با همدیگه در این زمینه دارن و از همونجا که را افتاده بود اما نامم گرفت اومد که اگه بشه حضرت ابوالفضل و سه برادرش که چهار برادر از بچهای ام اون سه برادر هنوز از ازدواج نکرده بودند خود ابوالفضل ازدواج کرده بود و فرزند داره که نسل او رو هم در تاریخ مطالبی نوشتهن که برای این چهار همان امان نامه حضرت ابوالفضل اومدید شمر فریاد میزنه من اومدم به حسین بگید یا همین امشب بیعت میکنه تسلیم میشه میریم کو... کوفه یا با جنگ و آواس قبل پس خود کاری نمی کنه مطیع امامش سب کنید به امامم عرض کنم اومد خدمت امام آقا اینا یه همچه چیزی میگن حضرت فرمود به اینا بگو امشب رو میشه به ما مهلت بدن حضرت برگشتن امام امشب را از شما مهلت میخواد گفت نه خیر امشب مهلت نمیدیم بعضیا معترض شدند گفتند بابا اگر غیر مسلمانم بودن مهلت میخواستند حالا امشب رو بینا مهلت بدید این نکته رو برادران جوانتر و خواهران برای شما میگم امام حسین فرمودن امشب رو به من مهلت بدید من نماز و قرآن رو دوست دارم نماز بخوانم و قرآن بخوانم و لذا روایات داره شب عاشورا بعد از هر تاسوعا که گرفتن شب عاشورا از کنار خیام عبی هر هرکی رد می این تعبیر داره صدای قرآن و مناجاتشون مثل این که از کنار کندوی زنبور اصل رد بشید فضا رو این زمزمه پر میکنه اینجوری پر میکرد. کرد اول فض مهلت گرفت اون شب را شم صدا زد اول فض برای شما اما نامه آورده ایستادگی و صحب نمونه کچولوشه نمونه های دیگر هم حالا خواستم از روی نوشته بخونم وقت اجازه نمیده حالا همینجوری عرض میکنم خدمتون اولفرز علیه السلام فرمود من در امانم پسر پیغمبر در امان نیست این امان نامت رو بردار برو این استادگی رو که در اینجا نشون میده حالا درس کردم در زندگی اولفرز که یه کوچولوشه. اما سحنه هایی که به اقتضای خلقت دقت بفرمایید بعد از این که برای همه تون شنیدید حمله و جنگ رفت و خودشو به شریعه فرات هم رسند و نا سه روز آب نخورده اتش او غلبه کرده هوا گرمه جنگیده هرز خورده اتش تمام وجود گرفته ناخدا خداگاه کشش لذت تشن... رفع اتش دستشو برد زیر آب مشتی از آب را آورد بالا تا به نزدیک دهان فزکره اتشال شلوصه. یاد عطش حسین افتاد آب رو روی آب من آب بنوشم لذا تمام وجودشو حالا پدری که علی حسابش درست فقط یه نمونه بگم شب اول من دیگه اون عباراتو میدارم کنار اگه وقت شد میدارم فردا شب شب بیستیه که رمضان بود برای شما گفت علی تو بستر بود حسن و حسین بالای بستر امیر نشسته بودند، زینبین کنار بستر سیزده سال شب الفض. همه جا رعایت بچه های فاطمه رو میکنه یه وقت امیر دید عباس ای صورتش رو به کف پای علی چست بنده. پای پایی بالای بسته رو به احترام بچه های زهران نمیاد امیر المؤمنین چشوای کرد علامان نقل عباس هم بیا بالا کرد عباس اومد دست عباس گذاشت دست حسین کربلا یادت نره وا یاری حسین رو فراموش نکنی ها. مادرش اسمش پاتمه است بعد از شهادت حضرت زهراب فواصلی امیرالمؤمنین به برادرش عقیل میگه داداش میخوام یه زنی برام انتخاب کنی خصوصیاتش این باشه این باشه این باشه پدر علیه ولی میخوام خصوصیات مادر تأثیری که مادر داره داداش برای چی میخوام بچه هایی از او داشته باشم شجاع و جنگجو و قهرمان در کربلا هم یا همراه حسینم هم باشم فاطمه کلاویه رو انتخاب میکنن وارد خانه امیر میشه ارز میکنه علیجان من لیاقت ندارم در خانه تو اسمم فاطمه باشه فاطمه این خانه فاطمه زهراست من کنیز فاطمه زهرام اسم منو در اینجا عوض کنید اول به دنیا اومده اولین پسر ام از امیر المؤمنینه. همه جمع شدن گنداغه شو دادم دست امیر امیرالمؤمنین امیر المؤمنین بند گنداغه رو باز کرد این دستا رو ای میبوسه گریه میکنه مادر آقا جون دست بچه هم داره چیزی شده؟ نه اون اونی که من میبینم تو نمی‌بینی. چیه این دست در کربلا در دفاعی از حسینم جدا خواهد شد مادر آقا اون گنداغه رو بده من گنداغه رو گرفت آورد دور سر حسین گرده <تصفيق> نظام مقام اون ملبنی مقام هم ملبنی مقام خاصیست که زهرا سلام الله علیه ها عباس رو میگه پسرم که پسر خودش میخانه این وفا رو از مادر جنازه امام مجتبا رو بردن دفت کنن خانمه ها جنازه مکروهه زینب الله علیها تو خونت منتظره که برگردن ببینن چی شد ایتشافیش همه ابلفض داره میاد تا به دهلیز منزل رسید زینب دوید جلو شم برادرم حسنو کجا دف کردید عباس سرشو گذاشت به دیوار های های شروع کرد گریشتن آخ برا آخ من عباس زنده باشم جنازه و بدن پسر فاطمه رو تیرواران کنند خش تمام وجوده اول علیه السلام رو گرفته بود زینب سلام الله علیه علیها ها نقل فرموده باشند عباس جان صبر کنند اوز کربلا در پیش داریم. لذا تمام این مراحل را کرده همش هم به حسین میرسه یا سیدی یا مولای برادر بهش نمیگه تا رسیده روز آشورا حالا یکی یکی رفتن شهید شدن سه تا برادر از مادر خودش داره میاد به برادرا میگه دادش یک یکی یکی بیایید دارید نیدان عرض عدبتونو به زهرا زهرانشون بدید در برخی از منابع این رو تعلیل کردن مرحوم ها شیخ در نفس محمومم این رو توضیح میده میگه اولفض همون جوری که امام حسین آخرین شهیده این سلسله مراتب رعایت آیت شده اولفض علیه السلام هم نسبت به سه برادر کوچکتر دو انگیزه یک انگیزه مبادا یک در میلیارد. یه وقت برادران کوچکتر بعد از من تحت تاثیر وعده های شمر اما نامه رو بپذیرن که این بعیده احتمال دوم که میدن اینه اولفض علی السلام میخواد در راه حسین بالاترین اجرها رو ببره من جمله سه برادر از مادر خودشم ببینه در راه حسین این داغارم دید حالا نوبت به خودش رسیده یه وقت اومد تو خیمه امام حسین امام حسین منده و بعدش فقط علی اسخره که شهید میشه و ابلفض علیه السلام دیگه همه شهید شدن داداش اجازه میدی منم برم تا گفت داداش اجازه میدی منم برم حسین ابلفض رو در آغوش کشید ابلفض حسین رو در آغوش کشید این دو برادر گریه مفصلی کردن بعد حسین علیه السلام فرمودن داداش اتش بچه ها و رو پر کرده این مشک رو بهت میدم این رازی داره دقت قد حسین میدونه آب بنا نیست فعلا به خیمه برسه اما میخواد مطیع امام زمان بودن ابالفضل رو نشون بده که امام صادق هم به ما یاد دادن تو زیارت ابالفضل بگید از سلام علیکه العبد الصالح، المطیع لله ولرسوله و ولی امیر المؤمنین ولی حسن ولی حسین اونگونه که مطیع امام خودشه مشک آبو بش داد تو حالا که میخوای بری میدان اگر میشه مقداری آب برای بچه بیار عباس حرکت کرد امام حسین دلش نیومد همراش اومد تو مقاتل نگاه کنید دوتایی با هم اومدن دشمن وقتی دید عباس و حسین با هم میان گفتن اولین کاری که میکنید بین این دوتا رو جدایی بندازید. یه عده زیادی جنگ رو شروع کردن امام حسین از اول جدا جدا کردن امام حسین متوجه شد اینها میخوان به طرف خیام برن اومد مواظب به خیام باشه اول قد علیه السلام در این جنگ به هر قیمتی بود خودش رو به شریعه فرات رسون مشکه فرا آب کرد از شریعه اومد بیرون نگاهی ورانور بی انداخت کدوم را نزدیک تره؟ من یک عمری مطیع حسین بودم یک عمری بر امامم بودم حالا امامم امر کرده آب بیار میتونم آب رو برسونم یا نه این مش انداخته رو شونه راستش سوار بر مرکب دشمن هم جلوشو گرفته میزنه میجنگه میغره رو در رو که حریف نمیشن نمیشن پشت نخل خرمایی یک ظالمی مخفی شد از پشت نخل شمشیری رو پرند چپ راست عباس دست جدا شد افتاد زمین تا دست جدا شد ببینید امام شناسی رو عباس نگفت دستم خم شد مشک آب رو اول به دست چپ گرفت گفت نکنه معمولیتم رو انجام ندم مشک رو شونه چپش بوداشت. نمیگه دستم وای والله ان قطع تو مویمینی این ابدا عبدا اندینی به خدا قسم اگر دست راست من رو کردی من دست از حمایت دی اینم بر نمیدارم کربلا رفتی؟ اونایی که نرفتن انشالله قسمتشون بشه بیرون این دایره ای که بینال حرمه این است و حرم ابی عبدالله و اولفاز علیه السلام قرار داره با یک فاصله ای دو تا حالت گمبد کوچولو ساختم روی یکی نوشتم مؤلف افتادن دست راست اولفاز روی یکی نوشتن محل افتادن دست چپ اولفاز اینجاییم که گنبد و بارگاه و حرم ابوالفز کنار الغمه جایی که اول فرد همینجا شهید شده حالا دقت کنید فاصله جایی که دست راست افتاده تا دست چپ افتاده ببینید نزدیک چقدر را رو عباس با اینکه یه دست ندارد این همه را رو میره نمیگه دستم میگه دینم امامم مشک آب رو, رو شونه چپ میذاره ظالم از پشت نخل خرمای دیگری شمشیری میپراند دست چپ عباس هم قطع میشه مش این دفعه مشک رو به دندان میگیره معمولیتم انجام بدم تیری حرمله میندازه اول مشکش رو سوراخ میکنه وقتی مشک آب سوراخ شد میگه دیدیم دیگه اول فض شل شد دیگه ساز شد خدایا دیگه نمیتونم امر امامم رو انجام بدم همینجور که نگران بود یه وقت حرمله نشانی گرفت تیر را به چشم اول زد دست در بدن نداره تیر تو چشمهای عبلفض نشسته بخواد این تیر رو در بیاره دو تا زانوهای مبارک و آورد بالا سر و آورد پایین به کمک دو تا زانو تیر و از چشم بکشه دشمن وقتی دید عبلفض سرش داره میاره پایین با عمود آهنی محکم به فرق عبلفض کوبید اینجا بود که فرد از اسب به زمین افتاد ولی در لحظه به زمین افتادم صدا زد یا عخی ادرک اخاک برادرم برادر تو دریاب برای اولین بار حسین رو برادر صدا زد نمیدونم شاید طبق نقلها وقتی از اسب به زمین میافتاد فاطمه بغل باز کرده باشد و گفته باشم باز بس پسران فاطمه عباس رو پسر خطاب کند عباس هم به خودش عقبه بده بگه برادرم حسین میگه یه وقت دیدیم حسین دوید به طرف میدان ولی وقتی که داره میاد به طرف بدن عباس هی hey خم میشه یه چیزی رو برمیداره میبوسم و میبویه خدایا قرآن پاره شده زیر پا افتاده نگاه کردیم دیدیم دستای بریده عباس رو برداشته دستای بریده رو می اومد کنار بدن اول اینجا اینجا بود که حسین دست به کمر گرفت و گوه الانه این که سر زهری و قلت هیلتی.